می‌خواهم شما مطمئن باشید که برای شما که در این حروب مقدره اتشار شده چه چیزی باز شده که من در اتباع این سوره ها بیشید چند دو سوره بود؟ نرمید با برای تکنم اون که سخیل سنمید مجم خدا سخیل این مثال است. حالا یه دیگه دیگام که یه جای هست. یه چیز باطنی هم داره. حالا در قرآن نگاه یه مثال خوش پیدا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ما ار صل این سوره بیشتر در مورد کافرین داره ارتفاع با هم دارند این سور مجیح هم هست تقریبا در هم در سپادن میکرد و مسائلی که به ارتفاعات در میگرده در این صورت. این نرب الله عرق از سماوات وله عرق این سفقت از حیامی کمت توا علل ما من شفیع الا من بعد اردنی زاده الله اولاد رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب رب خدایی که یعنی نیامده الله رو توضیح ده الله مشرفت رسته که صفحه مدهی خدایی که جنینه، الذی خلق از سماوات و خدایی که آفرید از سماوات الهجام برد جمع هم. علف را میده، علف این جمع دوباره ها نسبت به هر نیمونه این جمعش عرزون و عراضی عراضی که غیر عراضی دولت عراض عراض می کنه هم با عراضون و عراضین که بود با می کنم جمعه گرده مالای که بالا شرط در این کلمه الان معادله از سماوات جمعه ترجمهش میشه آسمان ها دیگه بود من زمین ها کرا شما این هستی رو نگاه کنید هستی از چی تشکیل شده آسمان وزار وزاری بیگه ناز و گراب یه چی دیگه, دیگه میشه در واقع ان نرب الله الذی اللہ الگی خلقل آدم همه آدم رو هر چیزی که غیر ذات و سهلاف باشه ما الله مخلوق و کدامه همه به خدا 33 تا رو می دهیمه ایامه می دهیمه جمع یوم جمعه بلد ایامه می دهیم. و به دریا شده یا دریاه مال شده نیست تا یوم به چی میگن یوم به این میگن که زمین به دور خودش دیگه میچرخه. می سال دور میشه به دور خودش میچرخه شب و روز دور میشه. وقتی که زمین و برات و آسمان ها و اینها نبوده یکی این یوم معنایی دیگه نداره. حالا اون چیزی که از این تیسته ایام در میان خواهد افن باید شیش مرحله باشه شیش گذره باشه شیش دوره باشه ها ارایه ها اون چیزی که از این آیه فهمیدونیشه اینه که آسمان و زمین دفع افن آفریده رو گیرید نشونیست بلکه سرخت آسمان و زمین هر بوده یعنی به شکلی بوده که حالا بر حسب بقول معروف نیروی گریز از مرکز جاذبه جمع شدن این های گازی و تولای دربار باعث میشه ها و انسجام این گولگورها در هم دیگه تشکیل این عالم رو به این شکلی که ما می‌بینیم، هیچ دستایی رو صنم یعنی بعد از اینکه خلقت تمام شد و من هر وقت نشون میده آن این آفرینش مراحلش انجام شد خدا خداوند بعد از آفرینش حدی هستی رو نهاد دید آخه که واقعا معتقدند که خدا مثل یک ساعت چون ابتدای آفرینش رو نکردن اینکار کار کردن میگن خلاص این تضی از کجا اومد این الان هر این هنر ابتدای آفرینش رو اینکار کار لذا بگم خدایی در افتدار آفرینش بوده آفرینه خالق و مبدعی بگیم بوده غدی حسن آباد برد حال حسن آباد برد اما اینکه اون خدا هر باشه، باشند محلو برد بعد یکی که بگم در اصلاس اطباق مصفقات، قلوت و معلول و جریانات قبول محلول و قوابط بینه اینها این داره بشین که بوشمنده بشین بلکه فلسفه ماده قبل اقتدار قبولی امامین به عنوان مثل یک ساعت ساز اون یک ساعتساز با یک چرخ ساعت دیگه تا دیزاین من برای ساعت در داره کار میکنه براساس اون چرخ دنده‌ها و براساس اون تنظیمی که اتفاق افتاده داره میکنه. نیاز به اون ساز ندارد حالا در هر حال مثال بزنید. خود همان در قرآن, قرآن سنت بعد از انجام شد ثم اصطبا است یعنی اصطبا استقرار یا خدامن عرش علا اصطبام در علا یعنی علا عرشیدی یعنی, عرش. یعنی خداوند بر این حسیدی شد مدیر این حسیدی شد که داریم کنز جوبه شن علم این جمعه کنایت اینکه که خداقند در تخت خود نشست کنایت چیه؟ بگیم که خداوند استیدا و قدرتش را فرمان را بر هر چی خواهد بگیم انجام. مثلی که بگیم پلان کرد از سال پلان تا پلان بر تخت نشد در مورد اون ممکنه دو تحت هم صورت بگیر ولی در مورد خودشون جس می فقط اون معنای کناری مسئله فلسفی خلاهم سمت این رو مطالعه ال امر ال اکلامی بده یودفه رو بریموزایی یودفه رو جمعهش سه تا ترکیب میشه برای شد چون محله عراقی چنده ها مهمه. این مهم نه و جا فیلو خایلو مقبوله رو هم یعنی چی؟ یعنی خدا من کارها میکنه. رو تدبیر می‌کنه. آن کل در یومه نوزایی میشم یودفه رو هم یودفه رو لایاب در حالت رو به در حالت رو کن دوزه نون های خراسی این یو دفت رو و می کنه جمعه جمعه یعنی جواب این سوال راشه که خداوند از بیرافرین بعد هم در هستی می گیم مستنفیش و تخت هستی نشد چه می کنه؟ می گیم یو امور را همه چیز در شدارید یو دفت همه امور رو بگیرم مستنف شد بی‌ذره خبر دوم برای این باشه. چی؟ یعنی ان ربکوم الله. ان ربکوم، یاد برونام. امام این احتمالاً چند به احتمال میگم مثلا یکیش ممکنه که احتمالی احتمال حال باشه. اس تابا اران استوا حلاله اش مدف برن یودر برن برای سخت هستینش در حالی که هستین داره بگی در این این ستا ترکیم ترکیم و اون به سیبستی که میکنه بلی ترکیم اون ترکیم خواله من در این همه جاله یودف برول هم تمام شد کارها رو همه رو اینجا این سوال میشوند یه خدا هم یودف برول هم یودف برول هم یودف برول هم دشت این کارها رو میکنه هیچ که دیرو بگید مدخلیت نمیده کموشتی بگفتن چه بگید یه بطا در کنار خدا بگید خدا چند جایگاهی دارن کاری ازشون برمید یش کار نمیکنه. میگه که ما من شاپیه ام، ایلا من باره. این ماوایمی که این من, من شفیه داره داره. یعنی ما شاپیه هیچ شفیی نیست شفیی یعنی چی از شرق یعنی شدن مشخص به اون قندی و کار رو برد ورده میگه ما مل من زاجا نگران در طلام نفس از بحث شفیی مذهب نیست ما ازلا من بعد ازنی مگر بعد از ازنی یعنی اگر خدا ازن داد آمد شفاحت بدونه خود ازنید ازنی. یعنی شفاحت حالا آیا این که شما شفیه میدانید ازمی دارن از جانب خدا من؟ نیم حق هیچ شفیه محقریتی بگید ما منی شفیه این شفیه لطول مجرور محلم یعنی لطول شفیه هم. موجودن الا بعد ازمی هیچ شفیه هی مگر بعد از الا سسمانی هست سسمانی محمدت اسم ماست بعد از نهی اون در آنکه مختلاشون محمد دلوقت. یعنی ما اون. موجودن. بعد اون بعد از بعد نه همیشه نیست همیشه نیست همیشه نیست در مزارش همیشه چنیز و دلالت در آننده بکنید و در بود شما زیادی در معانی رو نشونید از داخل خب اللا خدا رو معرضی که بیان شد لافع بعد بیگه زالکون این خداست این پر بردگاهشو شما. ها؟ زالکون مستدار و این خداست. این برورد برورد برورد برورد برورد با. خب اگر خدایی چنینه که هستی رو آخریه هستی رو هم در قبله خودش داره همه چیز رو هم داره اداره میکنه یه چنین خدایی مخلوق با شعور با چه کنه عبادت می‌کنه. این باوای نتیجه. معبودو پس فقط نه عبادت کنیم. باور پای نتیجه امر دین ذوالو بعد جامعه بده. یا اعلا تذکرون این تذکرون یعنی حد از این چی شده؟ عندام دثفام ها می باو به نتیجه همین دثفام برای مقدم شد این برای به نوعی توحید و تشبیه یعنی چرا اثر کار نمی یاری پس معلوم میشه که در باطن انسان خداشویی بحثت توحیدی خدا با این که خاله لحظی باید بودی لحظی باشه تمام این کده هایی که بودیم همه در وجود انسان بگه دکتال دا حد ندیم در از نام ها هست. اگر انسان متذکر بشه بگیم دون میدونم افلا ها تذکر بشه نمازم این متذکر بشه بسه افلا شد یعنی این ها تو موجوده ما رو شما اینها رو به تو گفتیم شما این ها رو بگیم متذکرش نشدیم نه بایده عملات علمون عملات عذردون عمل. نه عملات تذکرون هر چرا ما تذکر نمیشیم چرا به درزد اون کدهایی که در وجود شما ما قرار داریم و الان داریم ها رو فعال میکنیم چرا دیگه توجه بس ما همیشه قبلت کار همده اصطفان شد داره که داره الان این رو به ما گفت خدا هستی رو آفن. در مراحل رو بعد هستی رو رها نکرد در وقته خودشی به سوالالال بعد هم تزدیر تمام حضور این حضوری در همه همه همه هیچ کسی هم در کنار خدا با قابلیت دیدید شفاعت ندارد مگر به افنی و یه چنین رو شما باید و اگر به باطن خود برگردیم یه چنین برای شما محبوبی نشوند اگر ما بیاییم یه چنین محبوبی رو گوش کنیم اگر ما بیاییم الان تو اینجا توحید ثابت شد از اون تو اعتقاضات توحید ثابت شد مدیفه نسبت به معبود ثابت شد که اگر خدا این حدیب رو تدبیر نکنه. همه چیزش هم برد بگید. میشه بنده خودش که قرار از خدای عبادت کنه برای هیچ بونه بگید. برنامه نده. میشه؟ چگونه رو عبادت کنه؟ این بنده چگونه بونه بگو خود رو عبادت کنه؟ پس بنابراین نیاز به ارسال رسول و نیاز به هدایت هم به چی میشه؟ بس نیشه. بس نیشه. بس نیشه. حالا اگر خدا هم حتی را آقایی، بر حتی سوار شد، تدبیر همه امور آلم رو کرد، این همه نه در آلم نه ما را معمور به عبادت کرد، وقتی معمور به عبادت میکنه، باید معمور به هدایت هم کسی رو بکنه. هدایت میشه جزء لطف وجود جزئی وزیده به گلدن جزاشته خوده بود. چطبه الان میشه. این میشه. همه این کارا میگه. آیا میشه همه اینها با مرد موجودی مسلمات همون میشه؟ یکی عوادت بکنه یکی نکنه. ما هم اختیار داریم. عبادت بکنیم نکنیم. چون بلید یاده. به وزیری آیا میتونه تمون بشه؟ نه. از بنابراین قایه الهیه کن مرجع مزدری نهیه یعنی رجوع اضافه شد به کهانه شد الهیه هم مقدم شده مکیل هست یعنی چی؟ فقط به سوی خداست رجوعو کن شما با به خداست بیترای اشاره جز وارگشت رو به خدا نداری مال برای انسان نوشته شده ها کل دنیا تن درسته و دور مرد باشه پس برآوردی شما با خدا خلقت ابدسه خدا برنامه خدامند ابدسه و خدا این همه نذر انتباه ابدسه پس الهی هم ارج او کنید <سؤال> این جمیعاً حال از در داره یکی از جایی که حال از در موزاقان لگی ها جایی که موزاق عامل در موزاقان لگی باشه اینجا رو مدل ای همه خدا باشه و النا ایلعیه راجعه ایلعیه محظم کنیم ایلنا ایلعیه راجعه خب میگیم این که ما بازگشتمون به سوی خداست؟ اون هم همه یعنی معاق نیزه چون اگه برای بازگشت به سوی خدا داشته باشیم خدا هم با و خاله کاری نداشته باشیم باز این با حکمت خدا سازگاه نیست الذمي سرمایه عدل و حق بعد الله ای بعد الله بعد اضافه شده به الله مفعول مطلق مطلق چند جا عاملش حذف میشه چند جا عاملش چی میشه یکی از اون جاهایی که عاملش هست میشه میگن جایی یه یه مؤکد لنفسه مؤکد این جایی که یه جمله قبل اومده معنای اون مفعولو قصد کنه مثلا جای عامل مفعول کردن میشه جای عامله بگید من بودم کنم دادم آمل میشه محصول ماجه بودم چرا چون یه چیز اومده جاشو پرکرد نایب که میاد یک مثلا یا که میاد جای عضو میشینه یه نمیدونی عضو رو بیادی یا افضالله یا جای عضو نشسته به پارده با افضالله منصوب منون عضوی جمع بین اول و ما اول نایب و منون جای اینجا بهش میگن محکد و لنفسه این از مرات محکد و لنفسه الان مثال بزنم نه اح مثال میزنم من مثال بزنم بعد این شادا سما را را اکتر بزنم نه مثال میزنم الف و درهمل لغو علاگه الف و درهمل این جمعه این دهو علاگه قول موقعستم الف و درهمل یعنی چی؟ یعنی این آخا به من، به گردن من که بار درهم طلب من اگر به کسی من طلب دارم قاضی نمیاد دیگه که برای که باید دلیل بیاد، مستقی بیاد، بنگینه بیاد، ساهل بیاد به یکی اقرار کنن اقرار کنن، می اقرار به شما بزرکار شد اقتلاح می بیاد می اقرار و روحالا، الان کس افجار کن، راهد شده یا اقتلاح که همون به حکم ساهل رو این جمله بهتری دون روله آزمایش، چیه؟ معادله اینه، نیسته؟ میده میده اگه من گفتم لحوالای عرف و درهمه به شما بگم این چی که؟ میگه اعتراف کرد خب نیسته اگه از بندش کفتم اعترافن این اعترافن میشه چی؟ مفعول رو کنم که این جای عذره فونش هست گفتم کفتن عذره فون عرف Hmm. <سؤال> داره ای چه این جمله در واقع جای آمده این میگم کنم مفرور و مصرح معکدون میکنه جمله رو که اینو خودشه اینو خودش همی گردون در معنی در این اینجا بوده هست یه جمله جداست. این داره تحکیب میکنه جمله مفروردنگی هر بوده همین. داره چه اینو می چی چی؟ لنعته. مؤكدون لنع. یه دو تا این حالا اونم بگم که دو تاشو هم بگم. من بگم زیدون بعد بگم این مطبول مورد مطبقه جای فیلش نشه است این بوده حقا زالکا حقا این حقا دارش حق زالک حرق شده حقا مونده شده اما این زیدون عدی هنچی. یعنی چی یعنی فیل بابای من خب این چندتا تا احتمال داره یکی شنید زید بابای منه یعنی شوهر مادرمه و من فرزن و یه اعتمال هر عقیزی رو چی؟ عقیزی یه احتمال دیگه زیدان عقی یعنی اصطا ده منه معنم منه دیگه زیدان عقی یعنی بدر همتر چون تو روایت هم داریم آبون آبون آبون آب آبوکت بلاست اگون بلنده شد اگون علمه و اگون بجه خب برمیدونید خیلی میگن بیگن این حقا که گفته میشه همه اعتمال ها توی بیرز تقریبی اونو ثابت میکنه پس این در واقع محکدون لنفته نیم محکدون بگیر لفله چون این لفله این سه احتمال از در قضا داشت یه احتماله این محکدون بگیر لفله اما از از ترکیب و ساختایی رو سم شو؟ این دوتا موزه های درگشتن الله باید تو برین تو برین کتاب شما باید ساختار ساختار اون ساختار این رو به ما بگه ما یه ساختار و این ساختار این رو داره دا دیگه آن اینجا بعد بعدالله از نوع بگی یکی شده قرآن مؤكد بیستی بعد الله. این یک الهی مرجع و قول جمعی انا اگر بنداز توی لولاز چیزی یعنی وعد الله المعاذ ها یعنی وعدكم الله المعاذ اینا بدنه یعنی خدا به شما میگه وعده معاذ بده شده بعد الله جای بگید اون پس الهیه مرزو کن جمعه اون و اندازه تو لازن میشه بعد اکمه لا بگید اما خدا بدون توان بعد اما حقا چیه؟ حقاً اون مستاری جیه بگید که شد؟ اون او باقید دوره این که خدا گفته الهیه مرزو کن جمعه خب این چیه ازش را هم دیده این چیه این مطبط قدیه ثابته و گوزه حق یعنی حق و داره چه روشید این هم باید بگو محجد رو به نفت بگو چون جمعه قبل این رو میبرمونیدیم مطب یعنیمیه این هم دادر همون رو بگو حق یعنی سرگه چون جمله قبل هم وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَمَعَ آلٍ هم به اثبات رسید خداوند این رو به منجی. إِنَّهُ يَغْدُو يَعْقَبُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ شَكَلُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ و عذاب و به ما حالا این باید باید بود کون جواب این سواله که حالا اله اینه مرزه شد ما همه میخواهی بگیریم بگو. به پیشکار الهی داریم و این مهده خلاف و سر در سلم هست خواهی چیه اینه اون یبدعون هست به خاطر این ای نابو یاب داول خلق هر خلقه هر خلقام به را خلق رو منه مخلوق خداوند من مخلوقات رو آفرید ها خداوند مخلوقات رو به وجود آفرید خداوند یعزی رو آفرید یاب داول دگرن یاب داول البته اینو یوبدئو هم اوندا تو عبدره هم به همین منبر به یوبدئو خلق هم اوندا که با یوبیدو هم اون هارمونی میگه خودش رو داره. در چه ده ده بیشتر استفاده میشه تا عبد درعه. این نمون یف دوال خرقه. این ها دلالت ها افتران میگه. از روز اول همینطور دو داره خلقت رو بگیم. ادامه میده. یعنی می منو نداره. من و شما رو الان ماها و شماهای زیادی رو قبل از ما و بعد از ما. یف دوال وان به مولا بن گیا۔ ای عبدالحق، خلاص. سنه جلیل و حسنه یعنی چی؟ یه باعث فاصله یعنی نمانی. چه که ولی اینا نمی‌دونید که علای مجرور باشه. اما که قیامت میشه؟ چه اعاده یعنی خلق میشه اون بود ولی یویدوه این یویدوه دیگه دلالت بر استرناه بگیر نداره فیل آینده یب دور خلقه یعنی همین دور خدا من داره می آخری من یعنی در یه لحظه یل آینده خدا من اعاله می کنه یه درستید یه ند؟ دوباره اعاله من شکر شد چی کنم؟ اون به شما بیدردم اون استمرار در خلقت اما هیچی که استمرار در حاله هست نیست، به مستقل صحباً این یا این روحو به چی بردیده به خلق بردیده خلق خل به من شما اونایی که قرار حساب کتاب بردیده جن و این خود این یا این اگه به یه واژه اینی چی بود؟ یه که بوده. خواهم که بعد به خل. این که معلومه. اما این که که نه؟ همونو خلقو برمی کردیم اعاده یعنی بگیر بازسازی دوباره بازگردیدن و اگر اینها برمی کرده که بر کرده به خط یعنی میگه و شما با همین چه میگه داریم و به همین شکلی که هستیم باز دوباره آخریم میگه برم بله که گواره من با همینی که هستم بگید برگردان یعنی میشم برای سال معاد روحانی نیست معاد جسم، چون میگه یعنی دول خرد سومه یوری در یک یعنی آن ما در میگه که یه حالا ازا این یوری چرا خداوند دوباره ما رو به یاد میgere؟ لیجزی الانبیا اومد و عامل الصالحان. به غل خوب پاداش بده. لیجزی یعنی لعنت. الّذین آمَنوا اونایی رو ایمان آوردن. خب وقتی کسی آمده باشه دعوت به ایمان کنه و برنامه عمل صالح بده، یه عذری هم دیگه بپردیرند نشد بپردیرند بعد خلافند اونهایی که حفظ کش کردن ساله این رو بکرد لیجی دیالنزی نعامن و همه سال آن دلقصد. دلقصد یعنی عبد. این باید بلقف متعدده دیگری چرا خداوند بعد به من شما آقایی بعد گفتن بلقفت علیفتان آرازم مضاخنه لد. یعنی بلقفت پهیم یعنی به خاطره بگید ادارت ب ادارت اختیار نکنه بگید با هم وقت داشت خوب و برد تر و با هم نشوزن همکنون جایی یعنی بلقفت پهیم به سواب ترک به قادر عملش الذین آمنون رو قادر شدیم شد نشد یه شد؟ بس یعنی حادثم یعنی مستن یعنی بلقض نه بلقض حالا که آمدازم مدافعه دیگه یعنی خدا از ندین آمد و مردان ساله هاست رو پاداش خوب میده به قصد یعنی به خاطره بگو ادانتشون توی این دنیا چون توی این دنیا شوندن از مسیر خارج از این چیه از این چیه این رو نوعی از این چیشونی حالا میکنه میگه برس اول امود فیل مواظه هر چیزی تا جای خودش عرظ چشم اگر همین جایی عضل باشه شود؟ گوش اگر همین جایی عرظ باشه. هر چیز سر جای خودش بگی، هر از جای خودش تکون بخوره در جای دیگری واقع بشه، که جای جای عمومی، هیچ طوری موجب. به جور پس بنابرنی برقدر یعنی به قدرت هم یعنی خداوند اینها رو مصدفاداش میده به حاضرش چی بگید. کار درسته شد، کار آجلانه شد، و بندل تنهدید، چیز رو ها؟ ما همه اینها رو آوردیم برای خاطر اینکه شما به عمل روید، به پس بناوری بیاره، یعنی فرق. حالا هر کنید ما خواستنده من دارم نظرات ادبی و بحث ما هم همینه هم بود اما خب مومن اگر مؤمنین اگر مورسی پیدا می کنند جبرایی فیلام یا به خاطر قسمت یا به خاطر قسمت خودشون به خودشون در دروابط قسمت اعلامی سرچشون گرفت همه اینها بردا دست فرد میده درست داد دوست که خدا ما بهش بیده کار نداری داشت مشاهده کن چون نفس از او بوده حیات از او بوده ستور از او بوده خوراک از او بوده همه از دست و زبان که برای از اون میش طالع می‌زینی اما اگر خدا به خاطر کار خوب به ما بگه مرد خوبی بده درست که درست کرده ولی اون کار خوب هم به داشته برابری این برگه اما کاپکوپاشی میشن مقات فقط مال مؤمنین میده سالمین به خوبی ها میرسن بعد به چی میگه میگه والذین کفروا که در مقابل امامان هستند والذین کفروا من حمیمه من حمیمه شراب لحوم شرابون, من همیمه. من همیمه لحوم شرابون خبر اندر و که که کافر شدند برای اونها شراب شراحی همین همین یه جوش داغ خود جهنم خودش داغ همین هم بگیر سوزان ظاهر و باطن همه نیستوزد من همینه و عذابون نکرست کنه حالا فقط سوختن داخل و خارج نیست شکنجه هم هست و عذابون عظیمٌ عظیمٌ یعنی معلمٌ سعید به معنا مفعول مثل حکیم به معنا مؤثره عذابون عظیمٌ به ما اکنون قانونی اگر چون قانونی اگر چون فعل ماضی استمراری چون خبر به مضارع یا در مقابل آن کانن ماضی استمراری یعنی به سبب کفره هم المستمر نه؟ او ما این عذاب علیم و این شراب همین به اینها داده شده به خاطر چی ریست؟ به خاطر کفره اونا کفره مستمر حالا ممکنه یک نفری به خلی محلوم افتدای کار کافر میده همه ها بگو. کفری که تا محلی مرد کشیده شد کفری که منجربه بود به آقابت شر شده سوء آقابت شده به پرون این بمایش یعنی به سبب بفره داریم، هر مستن بشه میتونه صفت دردی عذاب کشه اعضاب اینا دردناکه اعضاب به خاطره بگید کفر مزدون ها به خاطر هسته عذاب اینها هم به خاطر بکید خب اگر مزدون ها به خاطر ایمانشونه بشونه بس ایمان به این نداله کفر اینها به خاطر ذلت بشونه کفر ذلت دیگه خروج از مذهب خط خروج از مذهب بلا همین چون اینجا به ما کانون یک فروم باش باش سببی گرشه. اون طرف من گفتم به قصد باش باش سببی باشه چیه؟ بیشتر با وای منیگم شیره پیچی چی میگم یا نه؟ یعنی اونا رو به خاطر ایمانشون ادادت، در درمزیر بودن خدا باداشیدی کنید اینها به سبب هرگی. پس چهار دسته که این چهار تعبیر که این چهار در که این چهار که خدا چهار دسته که بده چهار نه که این چهار دسته که این چهار یا که این که این چهار دسته برگرد یعنی نگذی از نظری این هم که امرو ولی این اصلا جمله جمله اسمی هست انگار خدا اون جایی که مثبت مصبیده اون جایی که شراب همین و عذاب همینه خود بر می چه میدنی گرفتی میگم یا نه سونه جنی آیه هست مشاهده همینه که چی اونجا میگه که انا لا ندریم از شرقون اریده بهن ام اراد رب بگون بهن خیار در مورد شر میگه چی انا لا ندریم از شرقون اریده بهن ما هم پوزه اراده شده به اینها بعد در مورد خدیه هم اراده ربهم رب به در مورد خیر میگه ارا ربهم بهم خیلی اما در مورد شام نمیگه اراده ربهم بهم شر. میگه اشردن اوریده بهم اورید که چه بیا مهمه اینجا در مورد مؤمنین میگه لجع زیات تا خدا بهشون موزه بده به خاطر عمل بساله ایم سیاه جمله یا سیزا که چی؟ ولی یکی الذین لذیرن که برو بگو بگو بگو بگو بگو بگو اما بگو چه میگه نشوه نشوه گفتن و همینید که نه؟ سیاه و داره هلی حالا از ترکیب دیگر هم وجود داره توی مذهب، درست شد؟ که مثلا فرض کنید که دماگشت فرو که تبعید باش باشه. دردآور ازابی، دردآور، دردآور به خاطر بگیرید مشخص شد؟ یعنی ما عنوانی رو که داشته باشیم که بعد بیا موارد دیگری دیگر رو هم آوردن دری بهتری میشم اینه که دمایه کنون به بس باشه برای حقاق به خب پس توحید ثابت کردیم، موار ثابت کردیم نبوفت بگیم ثابت کردیم اصول اعتقاقی هستی که این کامل موارد سو خودو چون چه نماغذت به من بگیم امتحاق؟ خوبند لبی او خداییست خوبی بزن حالا آره یه همچین خدایی باید معرفی کنید خوبند لبی جل شمس زیاد را دورد اگر بهش نگاه کنید زیاد زیاد نون در مورد خوشید زیاه بکارد در مورد به تمنون بکارد به لغت بررسی کنیم زیاه هر بیشتر از زو زو از بیشتر از نون و خوشید جایگاهش نسبت به ما همین رسیتا که کنیم تناسو در لغت جایگاه خود شده که شام با سو زیا قمر با نور و منیر بکنه آنی سو با مثلا ازتار بله با از با. حالا اون دیگه برسه دیگه یه اونجا دیگه دیگم زهاب کار در زهابانه اونم باز بیشتره <تصفيق> ما اینها رو ای. من ما بگم در رابطه با, با نور و در مقابل بگید فرشید زهر به کار رفته زیار به رفته و پرطور لغتی زیادی نور و منیر در مورد ماه بود. بیگه ببینید خدا حالا برگشتیم به این کوره ای که شما دارید بشته نیجی ببینید ببینید جعله از شمس از که یعنی همین با که بالای خدا خورشید رو ضیاء قرار داده و ماه رو نور ضیاء یعنی موضی یعنی جلالش همتا موضی است و القمر نوران یعنی نورانم یعنی منیر است درست ماطل بابا مطلب نه جلالش قرار دو خدا کاری که از خورشید ضیاء ذات و ضیاء ما ماه زونور صاحب میگی نشده شما جهل از, از شمس و دمره از وجه شمس بیرون از وجه دوره آیا میشه جعل جون منه خلقه چون جعل منه خلقه موالی یه مفضلی است شمس رو قمن رو بگیری اول دیاران و نوران رو بگیری های یعنی خدا آخرین خورشید رو در حالی که بسیار دوردنده است و ماه رو در حالی که نور تابان حالای در تون دو قرد وقت مثلا در ماه رو مثلا تابنده یکیش شیست داد ویدیه بگیم چون ماه نورش خایدیگه <ترجم> میشه یه مفضویم. میشه یا و نورن مخلوله دیگه میشه خب؟ اینه دو مخلولی بگیریم دو مخلولی رو من از درست این دو میشه موضی ازن نورن هم میشه موضی حالا چونه مستر جایی از مقاید برای مقالده درست و قدره اون مناظر حالا میرد به ما خورشید رو براش انجام گذر و تجرید داره. داره داره دیگه شمس و تجرید مستقل و شمس تجری ل لِمستقل یعنی خورشید در حال و امروز هم دیگه. تو جرکشان راشیری این منظومه شمسی را همه در حاله بگید حرکت هم اون درست جایه اما اما در مورد ماه اینجا سیدی که وقت در به رو مناسی همه خوشی دارن که منظومه شمسی ماه چیه ثابته در این کراه هم که می و این ماه ای که داره به دور زمین میگرده آه. ما الان داریم در عملش دیگه میگه و قدره مناظره این و قدره یکی هون... از تواکیب که قدره رو به جعل جهله دکیم به معناه جهله خب اون موقع میشه چی من... منظورش قدره هم مناظره بگیر میشه و جعل. و یعنی قمر و او، بگید منازله یعنی ذا منازله به خاطر یعنی با قرار دادیم ماه را صاحب منازلی یعنی ماه منزلهایی دارد انگار شب اول شب دوم شب سوم شب چهار رو هر از این ها یک منذری برای ما آه. ما جایگاه ها داریم که حتی بیدیم. چند بیدیم. بیدیم که ما, قرار داریم منادل. ما حتی رو, رو ما قرار دادیم مناب. ما مناب اینو که مثلا زید و ندرو قرار رو ما رو قرار دادیم صاحبه بدید. مناب یعنی ما ثالبه ایستگاهای تو هم وای که با ماه تمام میشه با ماه بگید تمام میشه ماه در شروع میشه بر خلاف که شما چنین نمیبینید خورشید صبح که در بیاد یک دایره تمام است غروب هم که میکنه دایره تمام س اما ماه چنین نیست ماه گویا بگید منزل منزل در خوب این قدره به منا جهله گرفتیم خار مفهول اول و منادله بگیم مفهول دوم به هر مصابقی یعنی زامن هست که به نظر من میبسم لابون رو اینه که بگیم ها منصوب به نظر خاطبه ها منصوب به نظر خافظه ما ری بزنگیم این رو که ها منصوب به نظر خافظ باشه قدر او منازل یعنی قدره لهو منازل قدره لهو منازل دره دیگه نه یعنی و خداوند تقدیر کرد قرار داد برای ماه بگیر بگرد برای ماه مناظر یعنی ماه ایزگاه هایی دارید. منصوب به نظر. تو کنون برقمره قدر و منازر قدر اینجا خب. خب چون باران پرستش پرسته دیگره قدر حالا چرا خورشید رو همینطوریم میکنست ما هم به قال و مردم همینطوریم ماه شبه چارده باشه مثل خورشید شبه و از کند زمین رو خورشید هم دیگه نورانی کنم میشه. چرا, چرا سمیشون؟ بیجه لتا علمون علمه یه به منه علاقه هست لتا عدد عدده سنینه بل حضا لتا علمون عدده, عدده یعنی سالیان جمعه ولی حتاب الالله من جلال کان جنسه یعنی تمام حسابیت باقا چه حسابیت باقا شهرین چه افتسانی این من دانستن نیست تا بشنم دید که چون هر تقدیمی رو شما دفعاید قرار دادید ممکنه دفعه در سر روش بشه ممکنه دو برو <تصفيق> <تصفيق> اما خداوند یه تقدیم دو آسمون برای شما گذاشته که هیچ کسی قابلیت اینکه اون رو تغییر بده <هزبق> نداره لتا علمان عدد از دهین خب عدد دهین دهین رو گفته میگنم چون که صد آمد هم شماست و شما ماهها ها میتونید وقتی سالها رو میتونید که شاش بودید با ام. شرکش ما ماهها هم میتونید حساب کنید هفته ها هم میتونید حساب کنید روزها هم میتونید روز اول ما دوم ما خساب کنید فتراتون تقویم پرده ولی حساب از تو بجای عجبه یعنی خداونده تعدمون حساب یعنی حساب های رو بدونید هیچ کسی دیگه نمیتونه بیاد انگار کنه بالا به رفایی بیاد خرابش بکنه حساب یعنی حساب های مردی حساب های مردی یعنی سال قبلی با چی شروع موشید؟ با ماه؟ میاه چیه؟ ماه ما چیه ماه که داره به قول تمام اعمال و رفتار به خود خودمون ما بردی واسه؟ بله؟ نه نه نه میکنه فرمی کنه درسته فرمین فرمین اینه که سالها رو می توید تشروید ماه رو می ولی اگر شما آمدید گفتید که فرق به به یه نفر درد دارید گفتید من چهاردهم این ماه به تو فرق دادم چهاردهم ماه آینده همه بیگیدم حساب حسابی ساله بسید ترمین بیست بس که ماه ماه شمسیه چیز ماه شعرانه ماه نمزانه ماه شده اول این ماه رو دادم اول ماه آینده میگیرم بعد بعدی از حساب کتاب ها هستش که حساب کتاب اعتقادی دره اول اقلیه هستی هستی اصلا رفیل سمین نداره بسید حساب, حساب های عبادی حساب های مازی در واقع تقریب هست برای شما کار بود به چنینی لِطَعْلَ مُحَلَ از و سهی تو تا جوه دیگه من داره ای از الان همه در هنده دیگه مواقی تو لِنَّاسِ وَلْحَجْ تو لِنَّاسِ یعنی همون یعنی بحثای خب تصویم چه روز ها این نیسته که شما فکر کنید کار ما فقط همین تقویم ها؟ ما کاربرد دیگر آفرینشی هم و داره که از رو ماج ایجاد می‌کنه تابندگی در شر به اونها رخ علتش برمیگرده اما اونی که به خورشید به قول معروف عبادی رو شما هم اینا اون تو ذات باشه مثل که خورشید نور داره اما خود نور خورشید با اونی روز رو روشن گرد نور خورشید داره فتوسنتز هم ایجاد می‌کنه داره هزاران آفرینشی هم روی کره زمین انجام میده و اونا جزء ذات خلقت میشه من توجهتون رو جلب بکنه که چه وقتی اونجوری به قافلینش برنامه كده شما ممكن اصلا خیلی از منظور خدمت رو ندونست روزی ديجاش كنید که ما هم الان چیکار داره میکنه ها این ماه آن بگید داره چه میکنه روزナビ بعد از چیزها شما میدونید تجربمت رو خیلی از مسائل که مرتبط داشتم ما بگیر ندونیم علم مرور داره نعم سوشالی میکنه از خدمت بیودی به خدا ولی استماعات ولی یعنی نیمان هم ما خلق الله و ظالکه الا بله هم دیدید؟ میگیم چرا چنینه؟ میگه ما خلق الله و ظالک ظالکه چی؟ یعنی کده این هست آفرینش ما خلق الله و ظالکه الا بله هم. یعنی الا ملحبتن به است، این به از برای هملاقی خدا نیاختید از این آسمان و زمین و هستی و قرات و رو مگر به که منفبت به در امراه حق. حق یعنی هرچی یعنی هر دیست این آفرینش خداوند نیه آفرین این رو مگر در حالی که نازمه مگر در حالی که بگید هر چیزی رو سر جای خودش ابد در مقابل این تفهیل زیرا خداوند هیچ چیزی را بگید بیهکمت ما کردم با خودا. حق گفتان یعنی معل یعنی حق مشخص شده؟ حال از بزرهای از باز. جالب اینجا دفت که رو آگرده هست منبابه تردیده بگیر اونجا اونجا قمال در دی جهل اونجا میتونست بگیر چی ما خلافن ولی ما خلافن باست وقتی که عظمت اینچه الله ما الله و جایت درست جاله بودیم چرا اینطوری بیان شد آیات یعلمون یوفت سلول یوفت توضیح آیات آیات هستی رو خدا نشون آه. آه. تفصیل داره نشون میده، ها؟ تفسیر میده همه جمعا داره این ریز بیان می کنید. که کمند و دالای منادم شدید. تفصیل اون در این ریز ریز به همه ی تفصیل ال آیات برای کی الامقوم متعربا فهمید. یعلمون. یعلمون یستح. یعنی ما در یک حالت شما نمی‌بینید. هر شب اون رو در حال حرکت. شب اول مندرگاه اولشه. اعلان. میدید. شب دوم مندرگاه دومش. بعد از درای... منزل تحضیر نفذه یعنی نه منزل نزول که میکنی اون رو ثابت میشه نه ماه در حال عرکته ولی شما هر ماه هر شب هر شب از ایندام یک ماه اون رو در بگید یک حالت میبینید خورچی در آن خورچی از اول صبح در میاد چیه؟ می‌گیوایره بزرگ نورانی. باز میونه یه اثر شما در انبار می‌تونید که یک توپیو از این ولی ما به دلیل اینکه شما درید با بقول معروف این رو در هر مرحله امشب که می‌بینید، خیلی از شل دیگه. انگار امشب از یه جای واضحه به خودش به ما نشون میده، شب بعد از یک جای واضحه دیگه. تا تمام میشه دوباره این دیگر را عبارت منزل بکنی. ما ما موضوع نداره. خب دقام یعلمونی تمام اینها برای کسانیه که ها میبنی. بابدی در این هلی ولی اگر آه؟ اون بر برگ درختان سر در نظر خوشی ها. نظر موشی هایی کنه ها نظر ها در نظر موشی هاییم چیز فرد برگ درفتان شد. در نظر موشی ها. هر هر ورقش داریم حالا کنه یه برگ درفت درس شدید با همه یعنی اما به اینکه انسان بگو به باونه هم بعد می فرماید به من اختلاف لیل منبانه اختلاف یکی از معانی شنید پشت سر هم رفتن اومده هم اختلاف بعد از دیگه که اینجا به نظر می همین باشه بعد اختلاف رو به معنی دوگانهی هم تفاوت هم گرفتن با همینجا یعنی شب و روز با هم تفاوت دارن مثل هم نیستن. روز رو شما میگی خورشید در میاد با گردش حرکت میکنه اما ماه در شب چنین میم. تفاوتی از بین شب و روز. گای و روز روزی گای ماه شب و تاریک گای و میشه در اماکن مختلف به هم رنگ میکنه. خورشید در روز به شکلیه که ماه در شب باشه، نیست که تفاوت‌هاست. ماه و روز خورشید در روز شب یه شکل نیستن. و جانه آمدن شب و روز هسته یه همچینی درستن اینه اختراف ان لیل و نهار و ما کلقه لاخت سماهات و لحظ و آنچه که خدا آخریده در آسمان ها و آنچه خدا در عدی آفریده اینه اختراف ان لیل و نهار و ما بگو یعنی این ما از جای اختلاف در جای جایی دیگو در آن شبه شد؟ اختلاف ما هر اقلی در شد؟ اما اگر اختلاف برمانه تخواه و سو گیرید این رو جایی هم سن آمد و رفت شب و روز و در آنچه که خدا فریده هست در لا لآیاتم لآیاتم با الله هم ترکیم نشانه های زیادی هست آیات این نجره از درایت از تشتیلی نشانه های بی نهایتی هست اما به قومن یتقون برای قومن بگیری اینجا به قومن یتقونی اینجا به قومن یه علمون یعنی ممکنه باید شما یعنی داشته باشی به ببهمی اما کونی که تو رو به خدا جویی می رساند بقط اما خیلی ها هستند بگیدید درگاه به در سه دوری میشه کافن چه دنیا و یعنی و قریبید اما بگید نظر و گوشتاد میفهمه اما چون تقوانی میگید مسیر خیلی مسیر تقوانی به بومن اون هر به مزارعه آمون یعنی فهمیده باید مستمر باشه تقوانه هم باید مستمر باشه تا شما از این هستی به خاله حدی برسید و از شناخت به خاله و حدیدی آباد کنید و با آباد کردن آخرتت قیامت تنبید میشه تو یه اطمال یعنم. چون سخون بس می رو دارد یه سخون را رو دارد اما غیر از علم ممکنه یه سخون را بگیر نداشته باشه یه رو نداشته داشته تفصیل آیات توضیح آیات به دردش می خورد به می میگن که آسید بوش ارمون. اون خواهد دقومه یه علمون نیست بدر شمکنه اما اگر یه باشد راشد در این به درشون کنه اما دو کنی یک ثبوت مارمون کسیه که جد. فهم کرده خدافت هم بگی نصیب رو هم بگو اون تاکی ما گفتم اگر ما رو میخوایم اختلاف رو به معنای بگیم پشت سرهم اومدن بگیریم اختلاف. اختلاف ما را نمو به اختلاف میشه این نسی اختلاف و ها بسی ما خلق اللهم اما اگر اختلاف به سفاوت ما نوشونی من خوری، بسیب میشه این نسی اختلاف آنون لگونده های مجھری اختلاف ما خلق الله یعنی تفاوت ما خلق الله ما خلق الله و هم یز مجھر خب، حالا خدا که که گفت صاحب هست، قیامت هست، مصق هست، داغ و همه اینا رو اینجا, اینجا دیگه دیگه از اینجا رب نمزدین الایتشون ربانان، دقیقه درسیه دیگه، محضره.